عزیزان به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس بخشی از دوره که به شما دیدگاه و درکی کلی از کل کتاب مقدس میده. مهد قدیم رو با هم مطالعه کردیم و امروز باز هم در ادامه مقدمه اناجیل نگاه مختصر نزدیک هم به متا خواهیم انداخت. یکی از تأکیدهای های انجیل متا پادشاهی خدا هست. آیا شما عضوی از پادشاهی خدا هستید؟ آیا فکر می‌کنید یا امیدوارید بخشی از پادشاهی اون باشید؟ با هم به دقت به درس امروز معلممون گوش می‌کنیم. وقتی درس قبلی به پایان رسید، مقدمه ای از انجیل متا رو با شما در میون گذاشتم. در این جلسه میخوام باز هم به مقدمه انجیل مطا ادامه بدیم. در جلسه قبلی از شما خواستم که به راهکارهای عیسی در انجیل متا دقت کنید. این مهمه که بفهمیم عیسی مردی بود که معموریت داشت. او کسی بود که می‌دونست معموریتش چیه. او کسی بود که برای انجام مأموریتش راهکار داشت. راهکار عیسی به کلیسای او مربوط میشه. یعنی راهکار عیسی مربوط به من و شما میشه. وقتی انجیل متی رو بخونید متوجه خواهید شد که پادشاهی خدا موضوع بسیار مهمی در این انجیل هست هر کدام از نویسندگان انجیل بر چیزهای متفاوتی تاکید کردند به این دلیل که ما چهار سرگذشت از عیسی رو داریم نه فقط یکی تحکید انجیل متی بر پادشاهی خدا هست وقتی متا بارها و بارها به پادشاهی آسمان اشاره میکنه منظورش چیه؟ اولا منظورش اینه که عیسی مسیح پادشاه هست و یک پادشاهی داره بعضی از انجیل مثل انجیل یوحنا تأکیدشون بر این هست که عیسی مسیح یگانه پسر خدا و تنها راه حل او و تنها منجی خدا هست. بنا به گفته یوحنا اگر شما می خواهید نجات پیدا کنید باید باور کنید که عیسی همون مسیحه و پسر خدا هست. یوحنا به شما میگه که چطور باید نجات پیدا کرد. این روی کرده متا نیست. گاهی شما از کسی که در ایمانش به مسیح رشد میکنه میشنوید که میگه من اخیرا در گرد همایی بودم و تصمیم گرفتم که خداوند رو در نقشه های خودم وارد کنم. تا زمانی که به اون فکر نکردید به نظر بسیار با میاد. وقتی به اون مخصوصا در انجیل متی فکر کنید، خواهید فهمید که وقتی درک میکنید عیسی پادشاه است و ملکوتی داره، موضوع اصلی این نیست که عیسی رو وارد نقشه هاتون بکنید یا خدا رو شریک خودتون قرار بدید. موضوع مهم واقعی اینه که عیسی مسیح از شما میخواد که در نقشه های او قرار بگیرید انجیل متا بحران مربوط به مسیحی شدن رو اینطور بیان میکنه ایسا یک گرده همایی رو در بالای کو ترتیب میده و در پایین کو شما جمعیتی رو میبینید که بخشی از مشکل جامعه هستند در بالای کوه شما گروه کوچکی از شاگردان رو میبینید که با ایسا گرده هم اومدن و ایسا داره به انها تعلیم میده. پس اونها می بخشی از راه حل او برای مشکلات افراد پای کوه باشن. روشی که متا بحرانهای مربوط به مسیحی شدن رو عنوان میکنه اینه. آیا شما بخشی از مشکلات هستید یا بخشی از راه حل ها؟ بنابرای گفته ی متا، وقتی شما مسیحی میشید فقط به این خاطر نیست که مشکلات خودتون حل بشه. بلکه به این دلیل که بخشی از راه حل او برای مشکلات جمعیت پای کوه باشید. عبارت پادشاهی آسمان ما رو به یاد عهد قدیم میندازه. در عهد قدیم خدا می‌خواست که پادشاه قوم یهود باشه. اگر شما یکی از دانشجویانی باشید که با ما در بررسی عهد قدیم همراه بودید، حتماً به خاطر دارید که در عهد قدیم در مورد پادشاهی خدا چی گفتیم. وقتی سموئیل نبی داور قوم خدا بود، مردم نزد او اومدند و گفتند ما این ترتیب و سازماندهی رو دوست نداریم. خدا میخواست پادشاه اونها باشه. و اونها جزء پادشاهی او باشند وقتی خدا برای اولین بار پادشاهیش رو طرح کرد منظورش از پادشاهی خدا این بود که اونها در منطقه جغرافیایی قرار بگیرن و این فقط مختص قوم یهود بود این اراده و فرمان خدا بود اما بنی اسرائیل اون پادشاهی رو نخواستند اونها به سموئیل گفتند ما نمیخوایم خدا پادشاه ما باشه میخواهیم ما هم مثل دیگر اقوام باشیم خدا نمیخواست اونها مثل دیگران باشن خدا میخواست نظام خداسالاری داشته باشه خدا بر مردم حکومت کنه به هر حال قوم خدا نظام خداسالاری رو نخواستند شش کتاب از عهد قدیم به کتاب‌های پادشاهی معروف هستند این شش کتاب به ما میگن که وقتی قوم خدا او رو به عنوان پادشاه رد کردند و گفتند ما هم میخواهیم پادشاهی از خودمون داشته باشیم خدا به سموئیل گفت سموئیل تو این رو به دل نگیر. اونها تو رو رد نمیکنند اونها منو رد میکنند اگر اونها پادشاه میخوان من هم به اونها پادشاه خواهم داد و خدا به اونها پادشاه داد وقتی کتابهای عهد قدیم برای اولین بار تدوین میشدند در بعضی از ترجمههای کتاب مقدس اول و دوم سموئیل اول و دوم پادشاهان خوانده میشدند و اول و دوم پادشاهان رو سوم و چهارم پادشاهان میگفتند از آنجایی که اول و دوم تواریخ همون دوره از تاریخ رو در بر گرفتن، اول و دوم تواریخ هم با همون چهار کتاب پادشاهان دسته بندی شدن و به هر شش کتاب به عنوان کتاب پادشاهان اشاره شده. تواریخ تمام دوره تاریخی رو تکرار میکنه چونکه چون که واقعی بسیار مهمی در ی این دوره به وقوع پیوسته. چون که قوم خدا به آرزوی خودشون رسیدن و بهشون پادشاهان داده شد. اونها با انواع دردسرها مواجه شدند پادشاهان اونها سبب شدند که پادشاهی تجزیه بشه و هر دو پادشاهی مغلوب شدند و توسط آشوری ها و بابلی ها به اسارت رفتن و بعد قوم یهودا از اسارت بازگشتند و بعد از اون عهد قدیم خاتمه یافت بعد از اون 400 سال دوره سکوت رو میبینیم در طی این دوره قوم خدا توسط رومیان مغلوب شدند و بعد از اون سکوت میشکنه یهیای تعمید دهنده و عیسی مسیح میان و خبر خوش پادشاهی خدا رو موعظه میکنن همون چیزی که متا بهش پادشاهی آسمان میگه. اون خبر خوش دقیقا اینه. خدا مایل باز هم پادشاه شما بشه وقتی میشنوید که عیسی درباره پادشاهی معزه میکنه و تعلیم میده، میبینید که او میگه این پادشاهی پادشاهی ملی و جغرافیایی نخواهد بود مسئله پادشاهی درون هر فرد بشری خواهد بود مسئله اینه آیا با تمام قلبتون به خدا تسلیم خواهید شد؟ آیا اجازه خواهید داد و پادشاه شما بشه؟ آیا شما تحت فرمان او خواهید بود؟ وقتی یحیای تمید دهنده و عیسی در مورد پادشاهی خدا موعظه کنند منظورشون دقیقا اینه برای کسانی که درک درستی از تاریخ قوم یهود دارن خبر خوش دقیقا اینه خدا مایل دوباره پادشاه شما بشه. این بار؟ پادشاهی خدا در این قوم و اون قوم نخواهد بود. پادشاهی خدا در این مرد و در این زن و در این جوان خواهد بود. هر کسی که پادشاهی خدا رو دیده و وارد اون شده هر کسی که مایل باشه تحت امر خدا باشه و خدا رو به عنوان پادشاه خودش تصدیق کنه جزء پادشاهی خدا خواهد بود. عیسی به نیقدیموس میگفت که هیچ کس این پادشاهی را نخواهد دید مگر اینکه از نو متولد بشه. و اگر کسی از نو متولد نشه وارد این پادشاهی نخواهد شد. وقتی عیسی در یوحنا باب سه این سخنان رو با نیقودیموس در میون میگذاشت، منظورش آسمان بعد از مردن نبود. عیسی نمیگفت بعد از اینکه مردید آسمان رو نخواهید دید، مگر اینکه از نو متولد بشید. آسمان بعد از مرگ چیزی نبود که عیسی ازش صحبت می کرد. پادشاهی خدا مفهومی کتاب مقدسیه و اون مفهوم از کتابهای پادشاهی عهد قدیم شروع میشه موضوع اصلی اینه خدا پادشاه هست و هر پادشاهی یک پادشاه داره هر پادشاهی یک قلم رو داره که در اون حکومت میکنه خدا پادشاه و قلم روی داره که در اون حکومت میکنه این چالش پیش روی ما هست آیا خدا پادشاه شما هست؟ آیا شما بخشی از قلم رو او هستید که در اون حکمرانی میکنه؟ وقتی شما تحت امر خدا بیایید، وقتی ببینید که خدا میخواد پادشاه شما بشه و او پادشاه شما میشه، اون موقع میتونیم بگیم شما پادشاهی خدا رو دیدید و وارد پادشاهی خدا شدید. متا این رو با عنوان پادشاهی آسمان مطرح کرده. وقتی ماتا پادشاهی خدا رو پادشاهی آسمان میخونه، منظورش اینه که خدا در آسمان هست و آسمان جاییه که خدا حکومت میکنه. در آسمان چیزهای خاصی هست که خدا اراده میکنه و میخواد اراده خدا در بود آسمانی اظهار شده یا چیزی که ما میتونیم بهش بُعد روحانی زندگی بگیم خدا میخواد که اراده او در بود آسمانی ابراز شده بر زمین هم اجرا بشه بنابراین او دنبال کسانی میگرده که به حضور او بیان و مطیع او بشن و بعد تبدیل به ظرفهای خاکی بشن که در اونها و توسط اونها اراده او بتونه در روی زمین اجرا بشه همونطور که اراده اش در آسمان ها انجام میشه وقتی عیسی به ما یاد میده که چطور دعا کنیم به ما تعلیم میده که اینطور دعا کنیم ای پدر آسمانی ما نام تو مقدس باد نام خدا ماهیت و ذات خداست چیزی که شما دعا می اینه خدایا من اهمیت نمیدم که کسی اسم منو بدونه اما باید اسم تو رو بدونند. با طرز زندگی میخوام به اونها نشون بدم که ماهیت و ذات تو چی هست بعد دعا می کنید و این رو درخواست می کنید. پادشاهی تو بیاید. به عبارت دیگه می گید، پادشاه من باش. بر من حکومت کن. بگذار من تحت امرت باشم و اجازه بده اراده تو رو تا جایی انجام بدم که پادشاهی تو بر روی زمین مستقر بشه. حالا سومین درخواست دعای شاگردان این طور بیان میشه اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. به حرف اضافه در در ترجمه توجه کنی؟ بعضی از ترجمه ها میگن بر. چیزی که ما دعا میکنیم اینه. پدر من اهمیتی نمیدم که کسی اسم منو بدونه. اونها باید اسم تو رو بدونن و ذات تو رو بشناسن. من هیچ پادشاهی برای خود بنا نمی کنم. بلکه میخوام ببینم پادشاهی تو بر روی زمین برقرار میشه. دقیقا منظورمون این هست که میخواهیم ببینیم که اراده تو در خاکی ما انجام میشه. می خواهیم ببینیم که اراده تو در ظرف‌های خاکی ما بر روی زمین اجرا میشه همونطور که اراده در بود آسمانی اجرا میشه همونطور که پولس رسول میگه بدن‌های ما ظرف‌های گلی کوچکی هستن پولس به ما میگه در انسان درونی ما صاحب گنجینه‌ای هستیم که منظورش همون مسیحه این گنجینه در کوزه های خاکی معمولی و یا در ظرف‌های خاکی زندگی میکنه غالبا نقشه خدا اینه که بر اون ظرفهای کوچک گلی فشار بیاره تا تمام دنیا ببینند که اون ظرفهای کوچک چگونه در مقابل فشارها واکنش نشون میدن تا اینکه از این واقعیت آگاه بشند که چه گنجینهی درون این ظرفهای کوچک وجود داره و بدونند که کسی درون اون اون ظرفهای گلی هست که این امکان رو برای اونها فراهم میکنه که ارزش پیدا کنند و کارهای خاصی بکنند که بدون حضور او نمی نمیتوانستند حالا وقتی این اتفاق میفته وقتی اون گنجینه مسیح که درون ما هست خودش رو توسط ظرفهای گلی ما نشون میده اراده او بر روی زمین توسط ما اجرا میشه همونطور که در آسمان اجرا میشه بعد پادشاهی خدا در زمین برقرار میشه او پادشاه ما میشه و ما مطیعانه او اینجا تعریفی از پادشاهی آسمان از محقق بزرگ دکتر جی کمپل مورگان داریم او اینطور میگه پادشاهی آسمان یک نظام خداسالاریه کسانی که جز خود خدا هیچ پادشاهی ندارن پادشاهی خدا ملتی تحت حکومت خداست کسی ملتها رو مجبور نمیکنه که به عنوان یک قوم تحت فرمان خدا باشن چون این خود افراد هستند که تصمیم میگیرن که تحت حکومت خدا باشند یا نه هیچ کس برای تمام ملت تصمیم نمیگیره افراد میگن من تحت فرمان خدا هستم من تحت اختیار او هستم او پادشاه منه و من مطیع او هستم من این رو برای خودم تصمیم میگیرم و شما برای خودتون من حتی نمیتونم به جای فرزندم تصمیم بگیرم شما هم نمیتونید به جای فرزندتون تصمیم بگیرید رئیس جمهور نمیتونه به جای ملت تصمیم بگیره و بگه ملت ما تحت حاکمیت خداست چنین چیزی امکان نداره در سرتاسر سر کتابهای پادشاهی چنین چیزی وجود نداشته پادشاهی آسمان امروزه در قلب این مرد و اون زن و اون جوان و این شهروندان آسمان هست. کسانی که توسط اونها و با ظرفهای خاکی اونها اراده خدا آنچنان که در آسمان اجرا می‌شود بر روی زمین نیز اجرا خواهد شد اونها یک قوم روحانی تحت فرمان خدا هستند به این دلیل پتروس میگه ما قومی مقدس هستیم برگزیده هستیم تمامی شاگردان عیسی مسیح قومی مقدس هستند پادشاهی آسمان تشکیلاتی هست با میارهای الهی بر روی زمین. پادشاهی آسمان تجلی اراده خدا در امور انسانی هست. پادشاهی آسمان حکومت خدا بر انسان هاست. پادشاهی خدا شهادت خدا بر انسان هاست. نتیجه نهایی اینه که پادشاهی آسمان یعنی پادشاهی که درون افراد زندگی می کنه. پادشاهی آسمان موضوع اصلی انجیل مطا هست. مطا به ما میگه که عیسی پادشاه بود و دنبال متیانی میگشت که توسط اونها و در اونها اراده پدرشان طور که در آسمان انجام میشه بر روی زمین هم اجرا بشه. وقتی به انجیل مطا می رسید به پادشاهی آسمان توجه کنید و توقع داشته باشید که عیسی را به عنوان شاه شاهان و رب الارباب ببینید. وقتی با دعا انجیل متا رو میخونید خونید یقیناً مشخصات پادشاهی خدا رو به وضوح و کاملا قابل درک خواهید فهمید. مثلا اگر با دعا و ذهنی باز بخونید، متوجه خواهید شد که یکی از اصول پادشاهی پارسایی هست. عیسی در اولین گرده همایی مسیحیان میگه اگر شما میخواهید بخشی از راه ها و جوابهای من باشید، باید پارسا باشید. باید آنچه که درسته انجام بدید. به جز این راهی نیست که بتونید بخشی از راه حل من بشید. پارسایی شما باید از پارسایی مردان مذهبی بیشتر باشه. کسانی که دنیای مذهبی رو اداره میکنن واقعا پارسا نیستند اما شما باید وقتی به من ایمان میارید و شاگردان من میشید پارسا باشید اون پارسایی زمانی ظاهر میشه که شاگردان عیسی مسیح تعالیم او رو در زندگی روزمره میپذیرند هدف یا منظور پادشاهی آسمانی سعادت یا شادمانی هست در بعضی ترجمه ها به اون توفیق گفته شده قوم خدا وقتی مطیع پادشاهشون مسیح شدند، همون چیزی خواهند شد که خدا قصد داره بشن. بعد یکی از نتایج این پادشاهی، آشتی کردن با خدا و با همدیگر خواهد بود. نیروی محرکه این پادشاهی نیروهای نظامی نیست، بلکه روح القدس هست. زکریا میگه نه به قوت، نه به قدرت، بلکه به روح من. قول یهوه این است. این آیه میتونه شرح مناسبی از نیروی محرکه و قدرتی باشه که پادشاهی آسمان رو به پیش میبره بنابراین در انجیل متا به شخص شاه دقت کنید به قدرت پادشاه و به شهرت پادشاه توجه کنید بعد به چیزی توجه کنید که محققین بهش اشتیاق پادشاه میگند که مرگ و قیام او بود من تشویقتون میکنم که وقتی انجیل متا رو میخونید به مطالبی که اشاره کردم دقت کنید اگر وقتی کتاب مقدس میخونید دنبال چیزی نگردید یقیناً چیزی هم نخواهید یافت تشویقتون می کنم که در انجیل متا تعمل کنید و دنبال پادشاهی آسمان بگردید بهتون قول میدم اگر وقتی انجیل متا رو می دنبال پادشاهی آسمان بگردید یقیناً این پادشاهی رو در انجیل متا خواهید یافت وقتی پادشاهی رو در انجیل متا یافتید ملزم بشید و بعد توبه کنید تبدیل بشید و وارد پادشاهی آسمان بشید جایی که ایسای مسیح شاه شاهان و رب هست وقتی متوجه بشید که مفهوم کلی انجیل متا پادشاهی آسمان هست اون وقت میتونید از خودتون بپرسید مفهوم پادشاهی آسمان برای من چیه؟ کاربرد عملی پادشاهی آسمان در زندگی من چیه؟ یحیای تعمید دهنده و عیسی به این سوالات ما اینطور پاسخ میدن پادشاهی خدا فرا رسیده است. اونها به ما میگند که مسئله پادشاهی آسمان درست در مقابل من و شما قرار گرفته چالش پیش روی ما اینه آیا اجازه خواهیم داد که خدا پادشاه ما بشه آیا ما مطیعان وفادار او خواهیم شد آیا زندگی هامون رو وقف خواهیم کرد تا آنچه که اراده او در آسمان هست بر روی زمین هم انجام بشه این موضوعی هست که وقتی انجیل متا رو میخونیم با اون مواجه هستیم یحیای تعمید دهنده و عیسی پیشاپیش به این سوالات ما پاسخ میدن و میگن توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان فرا رسیده معنی کلمه توبه برگشتن از مسیر و رفتن در مسیر مخالف است اگر کسی در خیابان به طرف پایین میره و شما بگید توبه کن در زبان یونانی مثل این هست که به او بگید برگرد و به طرف بالای خیابون برو. کلمه یونانی متاونیا معانی زیادی داره کلمات یونانی هم مثل بعضی کلمات در زبان ما معانی مختلفی دارند. این کلمه معنی دیگری هم داره که میگه شما باید از راه خطایی که در سرتاسر زندگیتون میرفتید توبه کنید. توبه کردن یعنی تغییر افکار، تغییر اراده و تغییر مسیر. اون همینطور به معنی دوباره فکر کردن هست. وقتی های تعمید دهند و عیسی مسیح پادشاهی خدا رو عنوان می و ما رو به چالش وا که توبه کنیم، چیزهای مختلفی به ما میگن. اول به ما میگن که پادشاه رو ملاحظه کنیم. و ببینیم که وقتی پادشاهی خدا رو برای ما عنوان میکنه منظورش چیه وقتی متوجه شدید که پادشاه کیه و داره چی میگه خواهید فهمید که پادشاه میگه ارزش‌های این پادشاهی ارزش‌های فرهنگ ما نیست ارزش‌های پادشاهی آسمان در راستای زندگی و افکار جامعه ما نیست بنابراین وقتی پادشاه و پادشاهی او رو ملاحظه کردید اولین گام به سوی توبه اینه نسبت به این واقعیت که ارزش‌های شما همگام با ارزش‌های مسیح نیست، ملزم بشید بفهمید که شما مثل شخصی که مطیع پادشاهه و اونطور که مقرر هست زندگی نمیکنید. اون ارزش‌هایی رو که عیسی داره ندارید. سال‌ها پیش وقتی روسای هواپیمای مسافربری کرهایی رو هدف قرار داده و ساقط کردند، تمامی دنیا شوکه شدند و گفتند روسیه مثل ما ارزشی برای زندگی انسان‌ها قائل نیست. ارزش های برابر با ما ندارند. این فکر از که آمده که ما این همه برای زندگی انسان ارزش قائلیم در جنگ شهرها بمباران میشن ارزش انسانی ما کجاست؟ چند نفر کشته میشن؟ ما نمیدونیم ببینید چالش پیش روی شما این هست آیا سیستم ارزشی شما دقیقا مثل سیستم ارزشی پادشاه؟ در معیزه سر عیسی میگه اگر کسی برگوونه شما سیلی زد گونه‌ی دیگرتون رو برگردونید و با شریر مقاومت نکنید وقتی این تعلیم رو میشنوید شاید پیش خودتون بگید اگه این کارو بکنم اونا منو میکشن بعد پادشاه به شما میگه تو تصمیم گرفتی که به خاطر من بمیدی اینطور نیست من به شما خواهم گفت که کجا باید بمیری، چطور باید بمیدی و برای چی باید بمیدی وقتی میشنوید که او مفهوم پادشاهی رو به شما میگه به سخنان او گوش بدید با روح ملزم بشید که ببینید آیا چیزی که پادشاه به شما میگه در چهارچوب های شما هست یا نه گام بعدی بعد از توبه تبدیل شدن به سیستم ارزشی پادشاه هست. معنی توبه این هم هست تبدیل شدن وقتی اساس و ماهیت کلیسا رو درک کنید خواهید فهمید که عضو کلیسای مسیح شدن به این معنی که شما عضوی از پادشاهی آسمان هستید تجلی قابل رویت خدا بر روی زمین و چیزی که اراده خدا در بعد آسمانی هست این بهای زندگی شما خواهد بود وقتی واقعا پادشاهی رو درک کنید وقتی با ارزش‌های پادشاهی آسمان ملزم بشید، این بهای زندگی شما خواهد بود وقتی واقعا پادشاهی آسمان رو درک کنید خواهید فهمید که شاید روزی مجبور بشید برای ارزش‌های پادشاهی آسمان بمیرید کاربرد عملی کلمه توبه این هست. پادشاهی رو ملاحظه کنید به تمامی تعالیم عیسی که در انجیل متی است. ارزش‌های پادشاهی آسمان ملزم بشید، مطابق تعالیم عیسی مسیح و ارزش‌های او تبدیل بشید سم کفاش سالها پیش واعظ بزرگی بود و روش حیرت برای شرح مفهوم کلیسا داشت او گفت کلیسا گروهی از مردمی هستند که از سه مانع عبور می‌کنند اولین مانعی که اونها از سر راه بر برمی‌دارند اینه که تبدیل میشن اونها طبق اصول پادشاهی که عیسی در انجیل متی تعلیم میده تبدیل میشن بعد این مردم دومین مانع را از سر راه دارند که این هست دور هم جمع میشد در پادشاهی خدا چیزی به نام شخص تنها و یا تکرو نداریم همه ما که عیسی مسیح رو به عنوان پادشاهمون پذیرفتیم شهروندان کشور آسمانی هستیم کتاب مقدس به ما میگه که ما بخشی از بدنی هستیم که اعضای بسیار داره و همه ما به اون بدن متصل هستیم وقتی عضوی به درد میاد تمامی بدن به درد میاد. بنابراین چالش اینه، تبدیل شدن و گرده هم آمدن. سومین مان که باید قوم خدا در کلیسا از سر راه بردارن اینه که به رفتن ادامه بدن. وقتی مفهوم کلی این پادشاهی رو درک کنید شما حتما مشتاق خواهید بود که بروید. شما خواهید فهمید که کلیسا سازمانی خدمتی هست و با کلمه بزرگ برو به اوج خودش میرسه. شما صدای پادشاهتون رو خواهید شنید که میگه به خاطر من به دورترین نقاط جهان برید و با اونها درباره من صحبت کنید. به این ترتیب مقدمه انجیل متا رو تموم می حالا آماده هستیم که محتویات انجیل متا رو بررسی کنیم. ملاحظه می کنید که انجیل متا با شجرنامه نامه مسیح شروع میشه. متا ایسا رو به قوم یهود معرفی میکنه. او میخواد بگه یهودیان این پادشاه شماست. شما نمیتونید به یک یهودی پادشاهش رو بدون دادن شجر معرفی کنید. بنابراین متا با شجره نامه شروع میکنه ملاحظه میکنید کنید که این نسب نامه با آدم شروع نمیشه این نسب نامه از ابراهیم شروع میشه چون وقتی متا مسیح رو به یهودیان معرفی میکنه میخواد به اونها نشون بده که مسیح از نسل ابراهیم هست در باب سوم انجیل لغا نسب نام که او ارائه کرده تا به آدم میرسه چون لغا هدف دیگه ای داره لوقا انجیلش رو با این هدف مینویسه که انسان بودن عیسی را به ثبوت برسونه. لوقا نشون میده که عیسی از نسل آدم بود و خود عیسی هم این رو برای تمام بشریت تایید میکنه. وقتی این شجر نامه رو در انجیل مطا می میخونید، با دو مطلب برخورد میکنید که جالب هستند. مخصوصا برای اون دست شما که در بررسی عهد قدیم با ما همراه بودید. شما روت و از رو میبینید که متی در شجره عیسی قرار داده. آیا داستان کوتاه و زیبای روت و بو یادتون میاد؟ رود و بوذ در شجر نامه ایسای مسیح قرار دارند نام مادر بو راهاب هست راهاب که نام او در نسبنامه عیسی آمده یک فاحشه هست آیا در شجر نامه شما فاحش ای وجود داره؟ خب در شجر نامه ایسا هست من فکر میکنم کنم که این بسیار جالب هست در انجیل متا واقعی تولد او به دنبال نسبنامه ایسای مسیح میاد من که در مقدمه گفتم تولد عیسی مسیح مورد تاکید نویسندگان انجیل نبوده ما مسیحیان بیش از حد روی کریسمس تاکید میکنیم در حالی که نویسندگان انجیل بیشتر بر قیام او تاکید کردند اگرچه مرقس و یوحنا تولد عیسی رو در نوشته هاشون ثبت نکردند اما متا توضیح کمی در این باره به ما میده وقتی متّا درباره تولد عیسی با ما صحبت میکنه ملاحظه کنید که او تولد از باکره رو برای ما به تصویر کشیده من تعجب میکنم چطور مردم مخصوصا استادان شناسی و دانشمندان میگن که میتونن به مسیحیت باور کنن اما نمیتونن تولد از باکره رو باور کنن معجزه بزرگی که نویسندگان اناجیل با ما در میون میذارن تولد از باکره نیست معجزه بزرگ در جسم پوشیدن خداوند توسط نویسندگان اناجیل عنوان شده نویسندگان اناجیل به ما میگن که خدا انسان شد آیا واقعا باور میکنید که خدا انسان شد؟ آیا به اون حقیقتی که توسط مثال اون مورچه های کوچک بیان کردم باور میکنید؟ آیا داستان مرچه ها رو که گفتم یادتون میاد؟ باور میکنید که خدا انسان شد تا بتونه ما رو نجات بده و با ما حرف بزنه؟ اگر باور میکنید که خدا انسان شد چرا باور نمیکنید که خدا به طریقی العاده انسان شد تولد از باکره رو پیشگویی کردند و نویسندگان اناجيل به ما میگن در حالی که مریم هنوز باکره بود او برای مسیح نوزاد حامله شد یوسف شوهر مریم که مرد دینداری بود در این فکر بود که مریم رو مخفیانه طلاق بده و او رو تماما کنار بذاره و پیمان زناشوییش رو با او نقض کنه و چون نمیخواست او رسوا بشه میخواست این کار رو در خفا انجام بده متا میگه که وقتی یوسف داشت به این چیزها فکر میکرد مکاشفه ای دریافت کرد خدا به او گفت اون بچه رو من در شکم مریم قرار دادم پس از ازدواج با او نترس متا میگه که داستان از این قراره آیا چیزی که متا نوشته باور میکنید در داستان تولد عیسی به اسامی او توجه کنید چون اونها مهم هستند معنی اسم عیسی ناجی است عیسی یک ناجی است معنی اسم امانوئیل این هست. خدا با ماست نام ایمانویل به ما شرح میده که او کی و چی هست. عیسی خدا هست و با ما هست. آیین ما میگه او هم خدا بود هم انسان. آیا این رو باور میکنید؟ اگر بتونید باور کنید که عیسی خدا با ما هست، اون موقع فکر می کنم که بتونید به تولد از باکره و یا هر پدیده العاده دیگری باور کنید. سوال واقعی اینه. آیا شما به چیزهای خارق ایمان دارید یا نه؟ آیا باور می کنید یا باور نمی کنید؟ اگر به قیام عیسی مسیح که یکی از بزرگترین حقایق درباره او هست باور می کنید، اون وقت باید بتونید به تولد از باکره و هر مجزاى خارق ای از جمله قیام خودتون باور کنید. درست در ابتدای عهد جدید در اول انجیل متا ما با موضوع و طبیعه یا چیزهای خارق مواجه میشیم. داستان تولد عیسی را به دقت بخونید. پیام انجیل رو با پیام‌های روی کارت‌های کریسمس مقایسه کنید. آیا تا حالا صحنه کریسمس رو که در اون فرشتگان به شکل زنانی که موهای بلند طلایی دارند و مشغول خواندن هستند دیدید؟ بنا به گفته کتاب مقدس، فرشتگان جنسیت ندارند. اونها مرد یا زن نیستند و موهای طلایی ندارند. بنا به گفته کتاب مقدس، فرشتگان زن نیستند. و در کتاب مقدس نمیگه اونها میخونند بر اساس کتاب مقدس سپاه آسمانی آمدند و گفتند جلال بر خدا در اعلی الیین و صلح و سلامتی بر انسانها در زمین جالبه که توجه کنید وقتی در کتاب مقدس فرشتگان بر مردم ظاهر میشند اولین چیزی که میگند اینه نترسید اگر فرشتگان زنان زیبا با موهای بلند طلایی بودند چرا باید میگفتند نترسید آیا کسی از زنهای زیبا میترسه گاهی کارت‌های کریسمس سه مرد حکیم رو نشون میدن که هدایاشون رو در آخر بر روی زمین گذاشتند و نوزاد کوچکی در گهواره خوابیده و اونها هدایا رو تقدیمش میکنند وقتی داستان کتاب مقدس رو میخونید ملاحظه میکنید که مردان حکیم تا دو سال بعد از تولد در آخر نزد کودک نیامدند بنا به گفته کتاب مقدس مردان حکیم کودکی رو در خانه ملاقات کردند نه نوزادی رو در آخور همینطور ملاحظه می‌کنید که تمامی اورشلیم وقتی مردان حکیم آمدند و پرسیدند او کجاست، پادشاه جدید یهودیان کجاست، ما اومدیم که او را بپرستیم، آشفته شدن. وقتی مردان حکیم آمدند، تمامی مردم اورشلیم به وحشت افتادند، چون پادشاه اونها هیرودیس بود. قبلا هم گفتیم که هیرودیس از ها بود. ها از یهودیان نفرت داشتند. اونها از هیچ فرصتی برای کشتن یهودیان صرف نظر نمی کردن. این بخشی از استراتژی رومیان بود که وقتی اونها ملتی رو مغلوب می بدترین دشمن اونها رو به عنوان حاکم و یا پادشاه بر اونها تعیین می تا جاسوسی ملت مغلوب رو برای رومیان بکنه. هیرودیس پادشاه بسیار ظالمی بود و مردم اورشلیم به این خاطر می هیرودیس فرمانی صادر کرد که تمامی نوزادان پسر تا دو ساله رو در بیت لحم به قتل برسونند به این دلیل تمامی اورشلیم از دیدن مردان حکیم به وحشت افتادند مردان حکیم میگفتند که پادشاه یهود به دنیا اومده و میخواستند محل او رو بدونند اونها میدونستند که این پادشاه یهودیان تهدیدی برای هیرودیس خواهد بود کاربرد شخصی داستان کریسمس چیه سه تیپ از افراد در داستان کریسمس شرط داده شدند اول این مردان حکیم مشتاق هستند که در جستجوی ایسا هستند اونا میدونند که ایسا به دنیا آمده و دنبال او می گردند. کارت های کریسمس گاهی مفاهم زیبایی دارند مثل اینکه مردان حکیم هنوز هم به دنبال عیسی می گردن. مردان حکیم هنوز هم او را پیدا می کنند مردان حکیم هنوز هم او رو میپرستند مردان حکیم هنوز به او هدایا میدن مردان حکیم هنوز میپرسند او کجاست؟ عهد قدیم با این سوال شروع شد تو کجا هستی؟ عهد قدیم به شما نشون میده که شما کجا هستید؟ وقتی که عهد قدیم به شما نشون میده که کجا هستید شما آماده خواهید بود که بپرسید او کجاست؟ من به یک ناجی نیازمندم او کجاست؟ به این ترتیب عهد جدید آغاز میشه دومین تیپ افرادی که در داستان کریسمس میبینید اشخاص مذهبی هستن هیرودیس از اشخاص مذهبی مشورت گرفت. افراد مذهبی کتاب مقدس رو میدونن. اونها هر چیزی رو درباره عیسی مسیح میدونن، اما هیچ قسمت از عیسی رو نمیخواند. چون عیسی میتونه به بهای طرز زندگی و شاید به بهای زندگی اونها تموم بشه. اونها نمیخواند که درگیر مسائل عیسی بشن. اونها همه چیز رو در مورد عیسی میدونن، اما نمیخوان دنبال او بگردن. اونها آمدن عیسی رو تهدیدی برای خود میدونن. سومین تیپ از افرادی که شما در داستان تولد عیسی میبینید، هیرودیس هست که از عیسی متنفره. آیا میدونید که هر سه تیپ این افراد هنوز هم در دنیای امروزی وجود دارند؟ امروز در سراسر دنیا کسانی هستند که از عیسی مسیح و هر کسی که با نام او شناخته میشه نفرت دارند. اگر شما با نام عیسی مسیح شناخته شده هستید، اون افراد از شما متنفر خواهند بود. هنوز هم هیرودیس ها وجود دارند. شما از این سه افراد کدومش هستید این یکی از کاربردهای عملی داستان کریسمس برای زندگی من و شما هست. عیسی راه حل مشکلات کسانی میشه که به طور ارادی جایگاه شایسته رو در زندگیشون به عیسی میدن در متی عیسی به پیروانش تعلیم میده که اینطور دعا کنند پادشاهی تو بیاید اراده تو انجام شود اگر واقعا کسی صمیمانه دعای ربانی رو بکنه در واقع به خدا این حق رو میده که مالک زندگی او بشه همونطور که داستان کریسمس به تصویر میکشه چوپانان و مردان حکیم به شاه جوان اعلام وفاداری کردن شما چطور؟ آیا به دنبال پادشاه زندگی خودتون می گردید؟ آیا آماده اید که داوطلبان خودتون رو به عیسی پادشاه تسلیم کنید و بخشی از پادشاهی العاده خدا بشید؟ دوستان آیا چیزهای خارق العاده رو باور میکنید دایما اینه که خدا کار خارقل ای در زندگی شما بکنه و توسط شما داستان خارق او به دیگران هم برسه تا اینکه اونها هم بتونن بینشی روحانی پیدا کنن و بیان و زندگی روحانی رو تجربه کنن. دایما اینه که تا برنامه بعدی شما هم مانند مردان حکیم او رو پیدا کنید و او را بپرستید.